سالها این چنین گذشت و هرچه می نوشیدم تشنتر می شدم و هرچه می خوردم و هرچه می گفتم ساکتتر و هرچه می شنیدم بی جوابتر و هرچه به دست می آوردم توهی دستتر و هرچه برخوردارتر محرومتر و هرچه نزدیکتر دورتر و هرچه موفقتر شکست خورده تر و هرچه مشهورتر گمنامتر و هرچه شلوغتر تنهاتر و هرچه پرتر خالیتر و هرچه شادتر مهزونتر و هرچه قنیتر محتاجتر و هرچه آشناتر بیگانتر تا یقین کردم اینجا جای من نیست بر روی این زمین قریبم این آسمان سقف خانه من نیست نباید به اینجا می آمدم اینجا تبعیدگاه من است چه گناهی مرا به این قربت دور رانده است اما اینجا سرزمین محکومان است جزیره دور دست و ناشناس قلعه استوار و ابوس و گنگ مغزوبین قوم مطرود اما من که گناهی نکردم پدرم خطایی کرده است؟ لغزیده است؟ خدا را معصیت کرده است؟ و من در آتش اسیان اوست که می سوزم او مرا به چونین سرنوشتی دوچار کرد مرا در زیر این آسمان ناشناس بر روی این توده انباشته عناصر در میان این همه موجودات بیگانه تنها رها ساخت با جماد و نبات و جانور همخانه کرد چه تنگ نای تاریک و خفقان با دیوارهای بلند و قطور برچهای سیاه و عبوس تنها بیکس، چشم به راه سالیانی خود را به در و دیوار زدم تا مگر راهی پیدا کنم بگریزم اما نشد زیرا نمیشد. تا مجروح و خسته و معیوس افتادم تلاش بیهوده بود هیچ دری به بیرون باز نشد هیچ کسی از بیرون نیامد و من چه تلخ آن را تجربه کردم پس چه باید کرد؟ این سرزمین را با عقل مسلحت ساختند پس باید با عقل مسلحت در آن زیست و چاره دیگری پیدا نیست و من چنین کردم اما چنین نبودم و این دوگانگی مرا رنج میداد، مرا هموار دونیمه می کرد نیمی بودنم، نیمی زیستنم و من در میانه نمیدانستم دانستم کدامینم که میداند که این تردید تا کجا وحشتناک است؟ چه پریشانی گیج و مبهوت و حولاوری در درون در عمق ذات خیشتن آدمی برپا میکند، چه راحت و بی است شک آن فیلسوفان بزرگ دکارت، ژید و کامو من میاندیشم پس من هستم من احساس میکنم پس من هستم من اسیان میکنم پس من هستم از خامی این پختگان به نام در عجبم اگر درد بودن یا نبودن بود که آسان بود و چه آسان دوامی شد به همان آسانی که آنها ثابت کردند اما کدامین بودن شک دردناک و است. خود را در خیش گم کردن و نیافتن و بدتر از این از میان چندین چهره مشکوک و فرار و نامعنوس خود را به یقین و اطمینان باز نشناختن است که در تصور نمی و من آن را در دل احساس کردم. چه خوشند آن سفیل صوف زرنگ، چه خوب مشکلشان را انتخاب کردند و چه زود هم حل کردند و خیالشان راحت شد. چه بادی هم به قبقب انداختند که چون این شق قلقمری کردند من میاندیشم پس من هستم دکارت. من احساس میکنم پس من هستم ژید. من اسیان میکنم پس من هستم کامو اندک اندک بودنم رنگ میباخت. و زیستنم آن را در اعماق فراموشی فرو میبرد و محو میکرد و من رفته رفته میشدم مجموعه درهم آنچه زیستن اقتضا میکند اما هرگاه که لحظه ای بیکار میماندم خاطره خودم بیدار میشد و بیتاب میشدم. خود را در قلب زندگی فرو می بردم تا از یادش ببرم. کار فراموشی بخش خوبی است. رنج ها و شخ و حساسیت های زندگی، است که رنج بودن را از یاد می آرام می کند کوشیدن، فکر کردن، خاندن و فرا گرفتن و از همه خوبتر برای من نوشتن مسکنهای خوبی بودند نویسندگی، این دشوارترین کار هلناکترین فاجعه زندگی من بود مرا به یاد خیش می آورد و چنان وار حلقومم را میفشرد که احساس مرگ میکردم اما کارها باز بر سرم میریختند و گریبانم را از دستم رها میکردند و باز سرم گرم میشد نه بند میشد و اینچنین زندگی میکردم نه اینچنین روزها را تا شب میرساندم و شبها را تا روز روزمرگی میکردم و شبمرگی هفته مرگی و ماه مرگی و سال مرگی و جوانی مرگی و قسمم اینکه این چنین این عمر مرگی کنم یکی از آن کارهایی که من خود را در آغوش آنها میافکندم و سرم را در سینه آنها میفشردم تا فراموش کنم کتاب بود و چه خانه خوبی و کتاب دنیا را و آدمها را چندین هزاران برابر میکرد و هر روز دنیا گستردهتر و آدمها بیشتر و از همه بهتر تاریخ و فلسفه و هنر و من خوشبختانه عاشق این هرسه و آشنای این هرسه و این سه مرا در سرتاسر سر دنیا میگرداندند و با همه آدمها آشنا می کردند مگر نه به گفته امرسون مورخ کسی است که با همه هایی که آمدند معاشر می‌شود مگر نه مورخ کسی است که در همه قرون و همه ها و با همه ها زیسته است و فلسفه مگر کسی کسیست که در طول تاریخ با همه کسانی که خوب و امیغ و زیبا فکر میکردند اندیشیده است و گفتگو داشته است چه خوب و من چه رندانه زندانم را زندان تنگ و تاریکم را و قربتم را و بی کسیم را از یاد می و یاد خیشاوندانم وطنم خانم و همزبانانم و آنجا را که بودم و آنجا را که باید میرفتم و اشتباهاً به اینجا افتادم فراموش میکردم چه خوب بله در این انبوه آدم و چهره ها و نگاه ها و حرف ها که در تاریخ دور هم نشستهاند و من در جمع آن همه ناگهان چشمم افتاد به دو ستا آشنا مخاطب آشنا حیف که این کلمه را پوک و پوچ کردند و نمی توانم به کمک آن برسانم که چه می خواهم بگویم. حیف آشنایی آنچه خدا نیز می خواست و می خواهد. نمی خواست در کویر عدم تنها نفس بکشد. در پس پرده قیب برای عبد مچول ماند. نیاز همیشه زاده نقص نیست. زاده فقر نیست. نیازهایی هست که زاده کمال است و اقتضای قنی آنکه زیبایی دارد در جستجوی نگاه آشنایی است که بدان عشق برزد آنکه که است نیازمند یافتن نیازمندی است که ببخشد نیرومند نیازمند حریفی است تا در هم شکند و نه دفتر کتاب چشم به راه خواننده‌ای خاموش نشسته است نویرانه گنج در انتظار دست آشنایی است که از زیر آوار بیگانگی بیرونش کشد و دلی که حرف دارد مشتاق یافتن مخاطبی است تا زندانیان معانی را که در درون طغیان میکنند و از خاموش مردن به وحشت اند آزاد کند. هنگامی که زمین جوع تو را آرام نمیتواند کرد آبهای نهرها و دریاها اتشت را فرو نمی نشاند وقتی زندگی دیگر برایت پیامی ندارد و از پدید آوردن ضعیفترین موج شعفی در دلت آجز مانده است وقتی همچون ژند پیلی که دلش هوای تنهایی می‌کند، از گله خیش کناری گرفتی و از انبوه شور و شوخهای دیگران خود را به گوشی خلوت جنگل کشاندی و تماشاگر جهان و هرچه در آن می‌گذرد شدی، ناگهان جهان و آنچه در آن می‌گذرد گذرد دگرگونه می شود. رنگها دیگر و طرحها دیگر و همه کائنات دیگر می‌شوند. و تو دیگر میشوی و دردها و شوقها و آرزوهایت دیگر و حرفهایت دیگر می شود. و چهره‌ها همه ناشناس و تلاش ها همه بیهوده و زیستن ها همه عبس و گفتگوها همه هزیان و تو میمانی و بیگانگی و آرزوی آشنایی که بر قله بلندی که بر همه کائنات اشراف دارد و همه چیز در پای آن حقیر و دور و مبهم می گذارد. تنها ماندن طاقت فرساست نمیتوانی به میان خلق فرودایی و از آبشخور آلودهی که بنی آدم و مرغ و مور و ملخ بر گرد آن ازدهام کرده اند بنوشی که در فهمیدن و احساس کردن راه بازگشت وجود ندارد. میتوان فراتر نرفت اما نمیتوان فرود آمد و نمیتوانی در بالای ابرها تنها و مچهول بمانی که آنجا جای خداست و بیکرانگی ملکوت احساس میکند که دردها و شوقها، شکوهها و شگفتیها آنچنان عظیم و سنگین شدهاند که به تنهایی تاب کشیدنش را بر دوشهای نازک احساس و تارهای نرم خیالش ندارد. هر لحظه خبرهای شگفتاوری میرسد. بارش وحیهای های غیبی تابش آفتاب های بدی جوشش درد ها و حجوم حرفها و چه رنجاب و روحرا است که تنهایم اینها هم سر در زمین فرو بردهند و در آرامش گیاهی و جست و خیزهای جانوریشان فارخند کو کسی تا ببیند که چه ها می‌بینم، بفهمد که چه ها میکشم بگویم که چه خبرهاست حرفهایی هست که کلماتش همچون سپند بر آتش در مجمر روح بیقرارند و آدمی را سراسیمه و بیتاب همچون روح سرگردان از شهر و دیار برون می‌کشاند و در جستجوی مخاطب گم شدهش بر روی زمین آواره می‌کند تا همچون دانته او را در خاطره خیشاوندش ببیند و یا همچون مولانا در قونیه بر لب صخر آبی و یا همچون مهر در آغوش محرم مهرابی و یا همچون سلمان پاک در خلوت سوزان و تشنه صحرایی و یا همچون حمام در سایر روشن مرموز و پرسخنه نخلستانی و یا همچون علی در هیچ جا هیچ کس اما چرا در آن نخلستان های آشنایی که علی دردهای پنهانیش را در سایه محتاب ناپیدایش پوشیده میگیرست.